سی و هفتمین حدیث فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم الرقبه جائزه الرقبا رزن عمره رقبا اینی که شخص بیاد منزل خودش را به شخصی بده مثلا شخصی منزل نداره منزلش رو بهش بده بگه تو توش بشین ولی خب شرط بذاره توش میگه این منزل برای تو اگر من مردم قبل از تو. ولی اگر تو مردی قبل از من، این منزل دوباره به خودم برمیگرده، این منزل خودمه. این رقضا، یعنی این به گردن گذاشتن یا به آهده و زممت گذاشتن طرف که مثلا بر فرض اگر تو مردی، این خونه به خودم برمیگرده و اگر من مردم برای تو باشه، این درشار جایزه. و همچون وصیت بهش عمل میشه و جایزه درشار کسی اینچنین کاری بکنه و اینچنین شرطی بذاره و اینچنین احسانی در حق کسی بکنه.